مصنوی معنوی مولوی برنامه نوود بیان سبب فصاحت و بسیار گویی آن فضول به خدمت رسول علیه السلام پرتبه مستی به حد نبی چون بزد هم مست و خش گشت آن غبی لاجرم بسیار گو شد از نشات مست ادب بگذاشت آمد در خبات، نه همه جا بی خودی شر می کند بی ادب را می چنانتر می کند گربواد عاقل نکوفر می شود ور بد بدخوی بدتر می شود. لیک اغلب چون بدند و ناپسند بر همه می را محرم کردند. قیان رسول علیه السلام سبب تفضیل و اختیار کردن آن هزایری را به امیری و سرلشکری بر پیران و کاردیدگان. حاکم اغلب راست چون غالب بدند. تیرا از دست رهزن بستودند گفت پیغمبر که ای ظاهر نگر تو مبین او را جوان و بیهنر ای بسا ریش سیاه و مرد پیر ای بسا ریش سفید و دل چقیر عقل او را آزمودم بارها کرد پیری آن جوان در کارها پیر پیر عقل باشد ای پسر نه سپیدی موی اندر ریش و سر از بلیس و پیرتر خود کی بود چون عقلش اقلش نیست او لا شی بود طفل گیرش چون بود عیسی نفس پاک باشد از غرور و از هوس آن سپیدی مو دلیل پختگی است پیش چشم بسته کش کوته تگیست آن مقلد چون نداند جز دلیل در علامت جوید و دایم سبیل بهر او گفتیم که تدبیر را چون که خواهی کرد بگزین پیر را آنکه او از پرده تقلید جست او به نور حق ببیند آنچه هست نور پاکش بی دلیل و بی بیان پست بش گافد در در میان پیش ظاهر بین چه قلب و چه سره او چه داند در قوسره ای بسا زر سیه کرده بدود تا رهد از دست هر دوزده حسود. ای بسا مس زرندوده بازار، تا فروشد آن به عقل مختصر. ما که با تنبین جمله کشوریم دل ببینیم و بظاهر ننگریم. قاضیانی که بظاهر میتنند حاکم بر اشکال ظاهر می کنند چون شهادت گفت و ایمان نمود حکم او مؤمن کنند این قوم زود پس منافق که در این ظاهر گریخت خون صد مؤمن به پنهانی بریخت جد کن تا پیر اقل و دین شوی تا چو اقل کل تا باطن بین شوی از ادم چون اقل زیبار رو گشاد خلعتش داد و هزارش نام داد کمترین زن نام های خوشنفس این که نبود هیچ او محتاج کس گر به صورت و نمایت عقل رو تیره باشد روز پیش نور او ور مثال احمق پیدا شود ظلمت شب پیش او روشن بود کوز شب مزلمتر و تاریتر است. لیک خفاش شقی ظلمت است اندک اندک خوی کن با نور روز ورنه خفاش بمانی بی فروز. عاشق هر جا شکال و مشکلی است. دشمن هرجا چراغ مقبلی است. ظلمت اشکال زنجوید دلش تا که افزونتر نماید حاصلش تا تو را مشغول آن مشکل کند و از نهاد زشت خود غافل کند. علامت عاقل تمام و علامت نیم عاقل و مرد تمام و نیم مرد و علامت شقی مغرور لاشی عاقلان باشد که او با مشعل است او دلیل و پیشوای قافل است. پیروه نور خود است آن پیش راو. خویش خیش است آن بیخیش راو. مؤمن خیش است و ایمان آورید. همبدان نوره که جانش زو چرید. دیگری که نیم عاقل آمد او آقله را دیده خود داند دست دست وی زد چکور اندر دلیل تا بدو بینا شد و چست و جلیل. بانخره که از عقل جو سنگ نداشت خود نبودش عقل او. آقل را گذاشت ره نداند نه کسیر و نه قلیل ننگشاید آمدن خلف دلیل میرود اندر بیابان دراز گاه لنگان آیس و گاه بتاز شمع نه تا پیشوای خود کند نیم شمع نه که نور کد کند نیست عقلش تا دم زنده زند نیم عقل نه که خود مرده کند مرده آن آقل آید او تمام تا براید از نشیب خود ببام عقل کامل نیست خود را مرده کن در پناه آقل زنده سخن زندنی تا همدم عیسی بود مردنی تا دمگه ایسا شود جان کورش گام هر سو می نهد عاقبت نچهد ولی بر می جههد قصه آن آبگیر و سیادان و آن سماهی یکی آقل و یکی نیم آقل و آن دیگر مغرور و ابله مغفل لاشای و هر هرسه. قصه آن آبگیر است ای انود، که در او سه ماهی اشگرف بود در کلیله خوانده باشی لیک آن قشر قصه باشد و این مغز جان چند سیاد سوی آن آبگیر برگزشتند و بدیدند آن زمیر پس شتابیدند تا دام آورند ماهیان واقف شدند و هوشمند آنکه عاقل بود عزم راه کرد عزم راه مشکل ناخواه کرد گفت با اینها ندارم مشورت که یقین سستم کنند از مقدرت مهر زاد و بود بر جانشان شان تند کاهلی و جهل شان بر من زند مشورت را زنده باید نکو که تو را زنده کند وان زنده کو ای مسافر با مسافر رای زن زونک پاید لنگ دارد رای زن از دم حب وطن بگذر ما ایست. که وطن آن سوست جان این سوی نیست وطن خواهی گذر زان سوی شد این حدیث راست را کم خوان غلط سر خواندن ضو کننده اورا را در وزوع هر عضو را ورد جدا آمده است ان در خبر بهر دعا چونکه استنشاق بینی می کنی بوی جنت خواه، از رب غنی تا تو را آن بو کشد سوی جنان بوی گل باشد دلیل گلبنان چون که استنجا کنی ورد و سخن این بود یارب تو زینم پاک کن دست من اینجا رسید این را بشست، دست من در شستن جان است، سوست عیز تو کس گشت جان ناکسان، دست فضل توست در جانها رسان حد من این بود کردم من لعیم، زنسوی حد را نقی کن ای کریم از حدس شستم خدایا پوست را از حوادث تو بشو این دوست را شخص با وقت استنجا می گفت اللهم ارهنی رایحت الجنت جای آن که اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتحرین که ورد استنجاست و ورد استنجا را به وقت استنشاق می گفت عزیزی بشنید و این را طاقت نداشت آن یکی در وقت استنجا بگفت که مرا با بوی جنت دار جفت، گفت شخص خوب ورد آورده لیک سوراخ دعا گم کرده ای. این دعا چون ورد بینی بود، چون ورد بینی را تو آوردی بکون، رایحه جنت زبینی یافت هر رایحه جنت کی آید از دبر ای تواضع برده پیش ابلهان وای تکبر برده تو پیش شاهان آن تکبر بر خسان خوبست و چست؟ این مراو معکوس عکسش بند توست از پای سوراخ بینی راست گل بو وظیفه بینی آمد ای آتول بوی گل بهر مشام مستی دلیر جای آن بو نیست این سوراخ زیر کی از اینجا بوی خولداید تو را بو ز موضع جو اگر باید تو را همچنین حب الوطن باشد درست تو وطن بشناس ای خاجه نخست گفت ماهی زیرک ره کنم دل ز و مشورت شان برکنم نیست وقت مشورت هین راه کن چون علی تو آه اندر چاه کن محرم آن آه کمیاب است بس شب رو پنهان روی کن چون اساس سوی دریا عزم کن زین آب گیر بر جو و ترک این گرداب گیر سینه را پا ساخت می رفتان حضور از مقام با خطر تا بحر نور همچو آهو که از پای او سگ بود می دود تا در تنش یک رگ بود خواب خرگوش و سگن در پی خطاست خواب خود در چشم ترسنده کجاست رفت آن ماهی ره دریا گرفت راه دور و پهنه پهنا گرفت رنجها بسیار دید و عاقبت، رفت آخر سوی امن و عافیت خیشتن افگند در دریای جرف که نیابد حد آن را هیچ طرف. پس چو سیادان بیاوردند دام نیم آقل را از آن شد تلخ کام گفت من فوت کردم فرصرا. چون نگشتم همراه آن رهنما ناگهان رفت و لیکن چون که رفت می ببایستم شدن در پی به تفت برگذشته حسرت آوردن خطاست باز ناید رفته یاد آن حباست. قصه آن مرغ گرفته که وصیت کرد که برگذشته پشیمانی مخور تدارک وقت اندیش و روزگار مبر در پشیمانی نیکی یکی مرغ گرفت از مکر و دام مرغ او را گفت ای خاج همام تو بس گابان و میشان خرده تو بس اشتر به قربان کرده ای تو نگشتی سیر از آنها در زمان هم نگردی سیر از اجزای من هل مرا تاکه سپندت پندت هم تا بدانی زیرکم یا ابلهم اول آن پند هم در دست تو ثانیاش بر بام کهگل بست تو وان سوم پندت دهم من بر درخت که از این سه پند گردی نیک بخت آنچه بردست است این است آن سخون که محال رازکس باور مکن بر کفش چون گفت اول پند زفت گشت آزاد و بران دیوار رفت گفت دیگر برگذشته غم مخر چون ز تو بگذشت زان حسرت مبر بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم ده درم سنگ است یک در یتیم دولت تو بخت فرزندان تو بود گوهر به حق جان تو فوت کردی دور که روزیت نبود که نباشد مثل آن دور در وجود آنچنان که وقت زادن حامله ناله دارد خاجه شد در غلغله مرغ گفتش نی نصیحت کردمت که ما برگذشته بر دی غمت چون گذشت و رفت غم چون می خری. یا نکردی فهم پندم یا کری وان دوم پندت بگفتم که زلال هیچ تو باور مکن قول محال من نیم خود سی درم سنگ ای اسد ده درم سنگ اندرونم چون بود خاجه باز آمد به خود گفتا که هین بازگو آن پند خوب سومین گفت آره خوش عمل کردی بدان تا بگویم پند سالس رایگان. پند گفتن با جهول خواب ناک، تخم افغاندن بود در شور خاک. چاک همق و جهل نبزیرد رفو دخم حکمت کم دهش ای پند گو پرنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج دهیه و اجرا کردند